به نام خداوندی آغاز می کنم که برتر از نام و نشان و گمان است. هموطن، در این روایت رستم دلاور بزرگ پای به صحنه قهرمانی ها می گذارن. آیا رستم یک واقعیت تاریخی است و یا یک سر زاده نبوغ بیچون و چرای فردوسی بزرگ است. پاسخ هرچه باشد. میهن ما ایران در طول هزاران سال تاریخ پرشکوه خود فراوان رستم گمنام و فراوان رستم شناخته شده داشته است. من این هشتمین روایت خود را به رستم رستمهای تاریخ میهنم پیشکش می کنم. هموطن شما سعید قائم مقامی. هفتمین روایت خود از شاهنامه برایتان گفتم با مرگ منوچه شاه پسرش نوزر بر تخت پادشاهی ایران تکیزه و دیری نپایید که با کجروی از راه پدران مردم ایران را از خیشتن ناخشنود ساخت و اوزای ایران آشفتگی گرفت شنگ پسر زادشم فرمان روای تورانیان که از دیرباز از روزگار کشته شدن سلم به دست منوچهر کینه ایرانیان را به دل داشتند به سر خونریز خود افراسی آب را با چهارصد هزار مرد جنگی و همراه با دهها سردار و دلاور تورانی راهی پادشاهی ایران. کرد سپاه 140 هزار نفری نوزر شاه با سپاه خونریز افراسیاب بیرون دیوارهای دهستان درون مرزهای ایران برخوردهای خونینی داشتند که در تمامی ها افراسیاب و سپاهش پیروزی به دست آوردند و سرانجام نوزرشاه و یک هزار و دویست سردار و مرد جنگیش به دست تورانیان اسیر شدند علا رقم این پیوزی ها سرداران توران در دشتهای میانی ایران یکی پس از دیگری از قارن فرمانده سپاهیان ایران و زال در زابلستان شکست های خورده تنی چند از برجسته ترین آنها به دست دلاوران ایرانی کشته شده فراسیاب دیو سیرت پس از آگاهی از کشته شدن سرداران و دلاوران سپاهش خشم این دست به جنایت بزرگی زده نوزر پادشاه اسیر ایران را پس از سرزنش‌های بسیار با شمشیر می‌کشد و بدین سان تخت و تاج پادشاهی ایران توقی از پادشاه می‌ماند <تصفيق> یکیزار و سردار و دلاور و زاده و مؤبد ایرانی اسیر افراسیاب خونریز هستند. و او که خون کاسه های چشمش را فرا گرفته دستور میدهد همه آنها را از دم تیر بگذرانه. اقریدس مهربان برادر افراسیاب که از ناجوانمردی او به درد آمده است پادر میانی کرده و افراسیاب میگوید کشتن این مردان که اسیر تو هستند و با خود شمشیر و سپری ندارند شایسته مردی و مردانگی نیست از آنها بگذر تا من آنها را در قاری در ساری به زندان افکرم که در رنج و سختی و اصارت جان سپارند پس اقری آمد به خواهش کرد. بیا راست با نام و داوری چندین سرافراز و گرد و سوار نبا با ترک و جوشن، نه در کارزار، گرفتار کشتن، نه بالا بابند. نشیوست جایی که بالا بابند. سزد گر نباشد به جانشان گزند. سپاری همیدون به منشان به ببند. افراسیاب دستور میدهد اسیران ایرانی را در قل و زنجیر و مسمار به ساریب. بانگاه برای دست یاوی به آرزوی دیرینه خود پادشاهی بر قلب ایران شتابان خود را به قلب ایرانشهر به ری می‌رساند و در آنجا تاج پادشاهی ایران را بر سر گذارد و در یکی از تیره ترین روزهای تاریخ ایران جشن و سرور برپا کرده زر و سیم و دینار می‌بخشد دیش دستان سوی ری كشید اسبان به رنج و بتک خوی كشید به سر برنهاد به دینار دادن دران در گشاد خبر کشته شدن نوزر پادشاه ایران رداسا در چران تا چران ایران میپیچد و ایران ایرانی سیاخیش میشود شاهزادگان توس و گستهم پسران نوزرشاه، عشق ریزان و سوجوار برای دادخواهی به سوی زابل حرکت میکنند. آنجا کنام زال است، شیر بازمانده ای از روزگار افتخار و بزرگی ها. نه تنها شاهزادگان که بزرگان و سرداران ایران به زابلستان روی میآورند چرا که زال تنها و تنها امید ایرانیان است. آمدین آیهی که شد تیره بیهیم شاهنشهی به شمشیر تیزان سر تاجدار بزاری بریدند و برگشت کار بکندند موی و شخودند رو از ایران برآمد یکی خون روی. سر سرکشان گشت پردرد و خاک همه دیده خون و همه جام تا سوی زاولستان نهاده انترون زبان شاه و روان شاه جوی زارا دلیرا شهان نوزرا دبا تاجدارا مها دابرا را نگهدار ایران و پشت مهان سر تاجداران و شاه جهان سرت افسر از خاک جویت همی زمین خون شاهان ببویت همی یاهی که رویت و دنبوم و نگون دارد از شرم خورشید سر همیداد خواهیم و زاری کنیم به خون پدر سوگ کنیم همانا به این سوگ ماور برصفه ز دیده خونمه شما نیز دیده خون کنید ز تنجامه ناز بیرون کنید که با کین شاهان نشاید که چشم پر از آب و دلپرز خش. آن جمع سودوار که زمین و آسمان در سوگ نوزر می گریز به پسران نوزرشاه توس و گسته و بزرگان و مردم ایران قول و زبان داد که تا گرفتن انتقام خون پادشاه ایران نوزر شمشیر آختش را در نیام نخواهد گذاشت پاراست خیز نبیند نیام مراتید تیز چمان چرمه در زیر تخت من است سنندار نیز درخت من است رکاب از پای مرا جایگاه یکی ترک تیره سرم را کلا بر این کین آرامش و خواب نیست همانند عشقم به جویاب نیست روان چنان شهریار جهان در اخشند بادامیان مهان پس همه کینه را ساختند هیونی هر سو برون تاختند فراز آوریدند بیمر سپاه ز شادی بریدند و از بازمگاه آمادگی سپاه ایران چون آبای رق و شراری برق کران تا کران ایران پیچیده است ایرانیان همه جا دلگرم و شادمان و امیدوار شده به جز یک هزار و دویست سردار و موبد و بزرگزادی ایرانی که در زندان ساری و در اصارت عقری به سر میبرند این از به زندانبان جوانمرد خود پیام میدهند که مردانگی کن و همچون بارن خوست ما را از چنگ خشم کور افراسیاب نجات بخش که ایرانیان، سرداران و دلاوران ایران به زودی به جنگ برخواهند خواست و افراسیاب به تلافی آن خون ما را در دم خواهد بید چون این گفت عقلی و سپرخیران که از این گونه چاره نه در خورد زمن آشکارا هم بجوشد سر مرد احمی منی یکی چاره سازم دگرگونه زید که با من نگردد برادر بچین جریدون که دستان شود تیز چنگ یکی لشگر آرد بره ما به جنگ چو آرد به نزدیک ساری رمه به دیشان سپارم شما را همه بپردازم به پردازم آمول نیایم به سر نامدارن در به نر آقای بخشنده و مهربان که بر این باور است سرداران و دلاورانی که در این جنگ های خونین و بیهوده اینک سرگرم ریختن خون یکدیگر هستند همه از یک ریشه و تبارند در پاسخ درخواست اسیران ایرانی بانها میگوید اگر اینک شما را رها کنم دوچار خشم افراسیاب خواهم شد اما بدانید چنان چه سپاهیان ایران به ساری برسند من با آنها نخواهم جنگی ننگ را به جان خواهم خرید و آن زمان شما را آزاد و رها خواهم ساخت اسیران ایرانی شادمان شده برای زال بزرگ پیامی میفرستند بخشود بر ما جهاندار ما شدت ریرس پرخرد یار ما یکی سخت پیمان فکندیم بن بران آن برنهادیم با او سخن از ایران اگر داستان را دو مرد بیاید نجویند با او برد گران مای عقید رس ز آمول گزارت سپه را بره مگر زنده از چنگ این اجده تن یک جهان مردم آگید رهان زال با دریافت پیام از ایران تشفاد دلاور جوان ایران را با سپاهی تیز رو به سوی ساری میفرستد، و غیرست شریف همچنان که پیمان داده بود به هیچ پایداری و مقاومت ساری و اسیران ایرانی را رها کرده به سوی ری و نزد افراسیاب میرود تشواد دلاور به همراه 1200 اسیر آزاد شده ایرانی به شتاب به زابل باز میگرده و زابلستان ارق در شادمانی و سرور در حالی که در کاخ پادشاهی زال جشن و سرور برپاست، در جایگاه اقامت افراسیاب در شهر ری، فاجعه بزرگی در حال شکی گرفتن است. عقریر از زندانیان را رها کرده، و اینک این افراسیاب اخری صفت است که او را زیر باران سرزنشهای خود گرفته است. کینکیست کنگیختی که با شهر هنزل برامیختی به فرمودمت کین بدان را بکش که جای خرد نیست و انگام خوش به دانش نباشد سر جنگ جوی نباید به در اون آب روی. سر مرد جنگی خرد نسترد که هرگز نیامی کین با خرط ویند پاسخ افترافیا دغشتی به ما یت همان شرم‌آ فرنگه کتایت به بد دست رس ز گستان بترس و مکن و بکس که تاج و کمر چون تو بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی یکی اورز دانش کی خرد. خرد را سر دی کهی در خورد سپه بود براشفت چون پیله مست به پاسخ به شمشیر یازید دست میان برادر به دونیم کرد چنان بیوفا و پا افراسیاب بدنهاد اقریرس بخشنده را کشته است این خبر به سرعت به زابلستان و زال میرسد زال غمگین و خشم این به ایرانیان می‌گوید این اکثر بخت افراسیاب تیرگی خواهد گرفت چنون سر بخت او شود تار و بیران شود تخت او راه افتید! بسد نای رویین و بربست کوس بیاراست لشكر كو چشم خروس سپه اوسوی پاس بنهاد روی همین رفت پرخشم و دل کینه ز دریا به دریا همی مرد بود رخ ماه و خرشید برگرمد تا بشنید افراسیاب این سخن که دستان جنگی چه افگند بون بیا سوی خار ری بیا راست جنگ و بیا شار هی شب و روز در جنگ تو گفتی که دیتی برو تنگ مبارز همی کشته شد بر درو همه نامداران پرخابشتون جنگهای خونین و پراکنده دو سپاه میوقف ادامه دارن که بسیار سرداران و دلاوران بزرگی که از دروی کشته میشنن هیچکس از پیروزی نشانی نمییابد همچون تورانیان ایرانیان نیز خاری از پیش نبردند دشمن در خاک ایران است و تحت و تاج ایران توی از پادشاه است شبیزال در این باره با سرداران خود سخن میگوید زالبان ها می گوید گرچه گستخم و توس پسران نوزر شاه برا زنده و دلیل هستند اما در این روزگار ایران پادشاهی می خواهد که از فره ایزدی برخوردار باشد از گذشته های ایران بداند خردمند و با تجربه باشد هرچند کس پحلبان بود بخت بیدار و روشن روان به باید یکی شاه خسرو نژاد که دارد گذشته سخنها ها بیا. به کردار کشگیست کار سپاه همش باد و هم بادبان تختشان اگر دارد ای توس و گسته سپاه هست و گردان بسیار مر نزیبت بریشان همی تاج و تخت به باید یکی شاه بیدار بفت که باشد بر او فره زدی به تابت او بخردی. ایرانیان در جستجو برای یافتن پادشاهی شایسته فرمان بر تخت و تاج توهی از پادشاه ایران به بزرگزادی از تبار فریدون بزرگ به نام زو پسر تحماس میرسند کشتات سال عمر دارند و با وجود کوهنسالی خردمند و تیز و بزرگ و پاک و پاکندیش است. زوی سال خورده پادشاهی دوستار آشتی و صلح و بسیار خدا و خدا پرست بود و از هر گونه جنگ و ستیز جوی خونریزی پرهیز داشت بدین روی با آغاز گرفتن پادشاهی او از شدت و خشونت برخوردها و درگیری های سپاهیان ایران با تورانیان که هنوز در قلمرو ایران به سر بردند کاسته شد به روز همایون زوه نیچ بیامد برآمد بر افراز تخت به شاهی بر او آفرین خان سال نشست از بر تخت زر پنج سال کوهن بود بر سال هشتاد مرد به داد و به خوبی جهان تازه کرد سپه راز کار بدی باز داشت که با پاکی از دان یکی راز داشت گرفتن نیارست و کشتن کسی آن پس ندیدند کشته بسی. همزمان با پادشاهی زوق جهان آن روز را کمابی و خشک ساهیخای گستردهی فرا گرفت کار کشت و کار یکسره کاستی گرفته گرسنگی و کمبود خوردنی پریدار شد ایرانیان و تورانیان این بلای از راه رسیده را نشانه ای از ناخرسندی خداوند از ستیز بی امان انسان ها به روی زمین دانسته ترسیده در پی آشتی و سازش با یکدیگر برآمدند چرا که توان جنگیدن با کسی نمانده بود همان بود که تنگی بودن در جهان شده خشک خاک و گیا را دهان نیامد همیز آسمان باد و نم همین برکشیدند نان بادرم دو لشکر بر گونه بود هشت ماه اندر آورده روی سپاه سخن رفتشان یک به یک همزبان که از ماست بر مابد آسمان زهر و سپه خاست فریاد آو فرستاده آمد به نزدیک زو تورانیان با فرستادن پیکی به اردوگاه زو از او درخواست صلح و آشتی کرد پادشاه ایران آنها را پذیرفت و در یک گرد همایی مرزهای تازه‌ای بین ایران و توران نهاده شد و تورانیان به پشت مرزهای تازه بازگشتند. زو پادشاه سالخردی ای ایران از میدان کارزار به سوی پارس و زال به سوی زابل و زابلستان بازگشتند. آسمان می شد باران باریدند. دانه ها و زمین سبز شد استقلال و قرور و شادی به ایران زمین بازگشت. پنج سال به شادی و آرامش میگذرد زوی خردمند هشتاد و شش ساله میشود و مرگ گریبانش را میگیرد چنین تا برآمد بر این پنج سال نبودند آیه زرنج همال زمان همانا شد از داد سیر جهان خواست کاید به چنگال شیر چه سالندر آمد به هشتاد و شش بپش مرد سالار خورشید فش به بدبخت ایرانیان کند رو شدان داد گستر بیازار زو آری حادشاه بزرگ و خردمند دیگری از دروازه مرگ گذره کرده به تاریخ می پیوندد. بار دیگر تخت پادشاهی ایران توهی از پادشاه مانده است سوی آبهای جیحون افراسی افراسیاب که از جنگی بی افتخار بازگشته است از سوی پدرش پشنگ سخت مورد سرزنش و نکوهش قرار می گیرد که نه تنها هزاران تورانی را به بهای هیچ به دم شمشیر تیز ایرانیان سپرده که به جای دشمن برادرش عقیرست را کشد و سرانجام هم به صلح و آشتی شرماوری تن داده است و در حقیقت از پروردی مردی که زال باشد گریفته است آری بدینسان پشنگ فرمانروای تورانیان پسرش افراسیاب را از خود رانده است چون آمد ز خار ریفراسی ببخشید گیتی و بگذاشت آب، نیاورد یک تن درود پشنگ، دلش پرزکین بود و سر پرز جنگ، همین گفت، اگر بخت را سر بودی، چون اگری رسش در درخور بودی، تو خون برادر بریزی همین، ز پرورد مردی گریزی همین، برا با تو تا جاف کار نیست به نزد منت راه دیدار نیست افراسیاب چون گرگ زهد خورده ای این از سرزنش های پدر انتظار بخت و فرصت دوباره ای را می کشد. که کار نیمه تمام خود را در ایران پایان بخشد و آتش خشم پدر را فرونش اینک اینکه با مرگ پادشاه ایران زو این فرصت پدید آمده است فرمان روای تورانیان پشنگ با شنیدن خبر مرگ پادشاه ایران شتابان تیکی به سوی پسرش افراسیاب روانه می‌سازد. سازد جنین تا بر بر این روزگار درخت بلا هنزل آورد بار به ترکان خبر شد که زو درگذشت. بر برانسان که بود تخت بی شاه گشت خراواز شد گوش از این آگهی که بیکار شد تخت شاهن شهید. پیامین بیامد به کردار سنگ و افراسیاب از دلاور پشنگ بگذار جیحون و برکش سپا ممان تا کسی برنشیند به گاه تو را سوی دشمن فرستن به جنگ همین بر برادر کنی روز تنگ پشنگ و افراسیاب میگوید به سوی ایران حرکت کن پیش از آن که پادشاه تازهی بر تخت پادشاهی ایران بنشینند گرگ زخف، پرد افراسیاب دمی نمی و سپاه خونریزش را به سوی ایران به حرکت در آبرند یکی لشکری صاف دفراسیاب سه دشک سفید تا رود آب که گفتی زمین شد پ روان همین وارد از روان ایرانیان با شنیدن خبر حرکت ساق ایرانیان و عبور اافرااس یااب ازجیفون بار دیگر نگران و این بار به زابل و به نسل زاب مید و از او شکوه می کند که در نبود سام ایران روی آرامش و آسایش ندیده است و زال کار دشمنان ایران را یکسره نساخته است و چنین است که گستاخانه برای به آوردن تاج و تخت پادشاهی ایران بار دیگر به حرکت در آمده‌اند یک به ایران رسید آگهی که آمد خریدار تخت مهی سوی زاولستان نهادند جهان شد سراسر پر از گفتگو بگفتند بازال چندی دروشت ای تیب و ساسان گرفتی به مشت پس از سام تا تو شنی نبودیم یک روز روشن روان سپاهی ز جیهون بدین سوچشید که شد آفتاب از جهان ناپدی اگر چاره داری مرین را بساز که آمد سپه بود به تنگی فراست چنین گفت با مهتران زال سر تا من به مردی ببستم کمر سواری چو من پای در زین نگاش کسی تیغ و گرز مرا بر نداشت به دریا نهنگ و به که در پلنگ زبیمم نهان گشت در آب و سنگ به جایی که من پای بفتاردم اینان سواران شدی پاردم شب و روز در جنگ یکسان بودم ز پیری همه ساله ترسان بودم کون چند گشت پشته یدی یعنی. نتابم همی خنجر من منر باز مندم ز تاب و توان نماندم جهان بی جهان پهلوان کنون گشت رستم چو سر به سهی بر او بر برازد کلاه مهی بخانم به رستم بر این داستان هستی بدین کار هم داستان که بر کینه يه تخمه زادشم ببندی میان و نباشی دوشم به بزرگان و سرداران ایران میگوید من همه جوانی و عمرخیش را به پای عظمت و افتخار و استقلال ایران گذاشتم اما این نیز حقیقتیست اینک پیر شدن و توان و نیروی جوانی با من نید با این همه برای ایران رستمی پروردم اینک او را خواهم خواست و از او خواهم پرسید آیا آمادی رودررویی با پسران زادشم تورانی و نجات ایران هست؟ آنگاه زال به سر جوانش رستم را به کاخ فرا ای گوه پیلتن به بالا سرک برتر از انجمن یکی کار پیش از تو رنجی دراز که از او بگسلد خوابا را مناس تو را نوز گه راز میست چه سازم که هنگام باز میست هنوز از لبت شیر بوید همی دلت ناز و شادی بجوید همی چگونه فرستم به دشت نبر ارت را پیش شیران پرکی ندرد. چه گویی، چه سازم، چه پاس که جفته تو بادا مهی و بهی. من نیستم مرد آرام و جام. چون این یال و این چنگ های دراز نبالا بود پروریدن به ناز. اگر کی کین آید و جنگ سخت بود یار یزدان و پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شدم چو بابور گلرنگ در خون شوم. هر آنگه که جوشن ببر در زمان زمانه بر سر از ترکشم پاسخ رستن به پدر آریست و آماده جان برای ایران است او از پدر تنها باره و اسفی شایسته و گرز نیایش ساب را میخواهد. یکی باره باید چو پیری بلند چنان چون مرا به خم کمن که زور مرا پای دارد بچنگ شتابش نیاید به روز درنگ یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه چو پیش من آیند توران <تصفيق> گروه شکسته کنم من به دو پشت پیل ز خون رود رانم چو دریای نیل چه روی زمین را و نام بی سپاه چه خون بارد پرند در دستم جوان آمادی نبرد با دشمنان ایران است او آماده است. پای در راه پر افتخار و حراسنگیزی بگذارد که سرنوشت پیش پای او نهاده و پدرش او را برای عبور از آن پرورده است روان سال از پاسخ پسر لبریز از شادمانی می شود او از پدر اسبی می خواهد متفاوت مقاوم هوش خوش و تاندرو، پس زال، شادمان، همه گله های عصب قلم رو فرمان روایش و حتی دوردست کابل را به زابل فرا از برابر رستم گذر میدهد. گله هرچه بودش به زابل ستان، بیاورد لختیز کابل ستان، همه پیش رستم همی و روح داغ همی خان. هر اسمی که رستم کشیدیش پیش به پشتش برف شاردی دست خیش زنی روی او پشت کردید به خم نهادی به روی زمین بر شکم هیچ اسمی شایستی سواری رستم نیست چون هنگامی که رستم دستش را بر پشت اسمی گذاشته فشار میدهد شکم اسب زیر فشار دست رستم به زمین میرسد. تا آنکه گله اسب از کابل را از برابر رستم عبور میدهند که در میانشان ا به است که کرهش گفتنگیز به دنبال می دوان است اسم این کره بوربرش رخش است <تصفيق> چون این تازه کابل بیامد است حسیله همی تاخت از رنگ رنگ یکی مادیان تیز بگذشت خنگ برش چون بر شیر و کوتا لنگ دو گوشش چو دو خنجر آبدار برو یال فربی میانش نسار یکی کره از پس به بالای او سرین و برش هم به پهنای او کنش پرنگار از کران تا کران چو داغ گل سرخ بر زعفران با دیدن رخش کمند برداشته و خیال گرفتن او دارد اما چوپان پیر گله به او میگوید این اسب متعلق به دیگری است و هنگامی که رستم به او میگوید اما روی کپل های داغ و مهر نام کسی دیده نمی شود چوپان پیر به او میگوید خداوند و صاحب و دارنده این اسب را نمیشناسم اما همه این کره جوان را رخش رستم می‌نامند و هر کس تا کنون خواسته با کمند این کره اسب را بگیرد با لگتهای سم و گاز دندانهای مادرش روبرو شده است که رستم به دان مادیان بنگری مران کره چند را بدید کمند کیانی همیداد داد هم چان آن کره را باز گیرت زرم به رستم گفت تو پیر ای مهترست به کسان را مگیر داغش مجوی که از این هست هر گونه ای گفتگون خدا این را ندانیم کس همین رخش رستن خانی خانیم و بس چو ما درش بیدن سوار سوار چو شیرندر آید بیانداخت رستم کیانی كمند سر ابرش آورد ناگه به برد بیامد چو شیر ژیان مادرش همی خواست كندن به دندان سرش بقرید رستم چو شیر ژیان از آواز او خیره شد مادیان بیفتاد و برخواست و برگشت از اوی به سوی گله تیز بنهاد هات <تصفيق> دم رخش را با کمان گرفته است. همچون اسوان دیگر دست بر پشت او نهاد فشار می‌دهد. اما رخش چون کوهی استوار زیر فشار دست سوار آینده‌اش مقاوم نیست. بیافشارد ران رستم زور من بر او تنگ تر کرد خم چمد. بیازيد چنگال گردان به زور بیافشارد انگشت بر پشت او. نکردی خوش دست بشردن تویی تو گفت این ندارد همین آگهی به دل گفت پیم برنشست من است کنون کار کردن به دست من است کشد جوشن و خود و کوپال من تن پیل بر و برو یار هست آنگاه پستم از چوپان پیر میپرسد چه به های این را میداند و قیمت آن چند است؟ ز چوپان بپرسید این اجده به چند و این را که داند به ها؟ این را پاسو برو راست کن روی ایران زمین بر این را بر ایران به بر این بر تو خواهی جهان کرد، راست ایران پیر به رستم می گوید اگر تو رستمی بهای این عصب ایران و آزادی ایران است رستم می خندد و دندان هایش چون مرجان می درخشد لبه رستم از خنده شد چون بسد همی گفت نیکی ز سزد سازد. اینک دلاور جوان ایران زمین باره مرکب اسب شایسته خود را به دست آورده است عصبی که تادم مرگ در جاده سرنوشت و تقدیر او را همراه خواهد بود مخلبان جوان اسب جوانش را آماده نبرد می کند و روز اینو می و با او در کوه و دشت و خشکی و آب می تازد و برای دورداشت و از برچشمی حسودان و دشمنان اسپند برای تشمی سلطان. زال دلاور از اینکه پسرش رستم باره و مرکب دلخواه خیش را یافته است شادمان شده در گنج ها را باز کرده سپاهیان فراوان از هر گوشه و کنار ایدان بهار فراق ازاران سپاکی، سطحا سلخشور و پهلوان پیاده و سوار با اسب و پیل در خالی که رستم جوان در کنار پدرش زال پیشا آنان در حرکت است از زابول به سوی قلب ایران براه می کنند بر زابول ستان را از زمین خفته را بانگ برزد که خیست به درون رستم پخلوان پس پشت او سال خورده جوان چنان شد در و دشت و را که بر سر نیار است پر بیر زدندی همی شه جا جهان را نصر سر بود پیدا نه و به هنگام بشکوفه و گلستان یا بر لشگرد ززا بلستان. افراسیاب که اینک با سپاهیانش خود را به ری رسانده است با شنیدن خبر حرکت سپاه ایران به فرماندهی زال بزرگ درمی‌یابد که این بار چون گذشته پیروزی آسان به دست نخواهد آمد از قرق در تشویش و استراب از خورد خواب مانده سپاه خود را به سوی نیزارهای بیرون شهر ری میبرد. از دلاور نیز انباج خروشان سپاه ایران را از بیابانها و کبیرهای میانه ایران شهر به ری میرساند ززال آگهی آفت افراسیان برآمد از آرام و از خوردخواب بیاورد سوی رود ری بدان مغزاری که بود خواب و نید زال پس از برپا کردن اردوی جنگی خود دلاوران و سردارانش را فرا می کنه و چگونگی جنگی که در پیش است و ایران و تخت و تاج بی پادشاه ایران بانن سخن می آدن. زال به دلاوران ایرانی میگوید مرگ پادشاه کنسال مازو سبب نابسامانی میهن و گستاخی دشمنان شده است و اینک جستجو برای یافتن کسی سزاوار تخت و تاج ایران مهمترین دشواری ماست. ماز به بزرگان و سرداران ایران آگاهی می‌دهد که موبدان به او نشانهای جوان جدیدی از تخمه فریدون را دادهاند که در البرز کوه به سر می‌برد او یلی به نام کیخسرو است که تمام ویژگی های یک پادشاه شجاع و خردمند و بافر و شکوه را داراست زال آنگاه در آن گرد همایی از رستم خواهد که با گروهی از مردان جنگی خود را به البرز کوه رسانده پیام زال و بزرگان ایران را به قیقباد داده از او بخواهد به شتاب خود را به اردوگاه سپاهیان ایران رسانده تاج پادشاهی ایران را بر سر بخواب، بروستم شنینگوست فرخوند سال، بارگیر خوبالو به فرآس یا برو تازهان تا بالموس کو، گزین کن یکی لشکری همبرو، ابر کهی خواب دار فرین کن یکی، مکن کیشو در برنجنده چو، بگوی کلشکر طراح خواستم، اما تخت شاهی بگیر خوستم با رخش تیز پای خود به حرکت درگاهده او باید از میان تورانیان که در دشتهای میانه ری و کوهستان البورز پراکنده اند گذر کرده خود را به کیقوبا برسانه خوستم در نخست این برخورد با گروهی از حلای داران سپاه توران آنها را تارمار کرده به سوی محمولیت خود به شتاب حرکت میکند. سپاهیان زخم خورده تورانی به افراسیاب از دلاوری گزارش می‌دهند که بر سر راه خود همه چیز را به خاک و خون می‌کشد و بسیار جوان است افراسیاب و خاشگین از کشته شدن سپاهیانش سردار تورانی قلون را پاسدار دشت‌های شمالی ری می‌کند و به او می‌گوید ایرانیان ریمن و زیرکان پس به هوش باش ا قافلگیر نشد بفرمود تا نزد او شد قلوم ز ترکان دلیری جوی پرفسون بدو گفت واکسن ز سوار وزی در برو تا در سا، دلیر و خردمند و هشیار باش به پاسندرون سخت میدار باش که ایرانیان مردمی ریمنه همین ناگهان بر پلایه زنند برون آمد از نزد خسر و قلوم، به پیشندرون مردم ره سر راه بر نامداران ببست، به مردان جنگی و پیلان مست. رستم و گروه که سپاهیان همراهش، پس از حمله قافلگیانه بر تورانیان و شکافتن سد تلایداران و پیشاهنگانشان دامن های اللبوس رسیدند انها در یکی از زیباترین و سرسبزترین ترین البرز های البوز با جوانی خوسیما و پهلوانی بلند بالا که همراه تنی چند سپاهی در کنار رودی سرگرم بس مشادمان است برخورد خود از آنان نشان کیقوباد و جاب و مکان او را رسسان شود پهلوان جوان دلیر که به نظر می‌رسد پرمانده آن گروه هست رستم را به نشستن و شرکت در بزم خود فرا می‌خواند اما رستم به او یادآوری می‌کند که در جستجوی قیقباد شتاب دارد و آن روی رستم دلیر و کوسین بپیمود زیشاه ایدان زمین یکی میل راه تا البرز کوه یکی جایه دید بس باغ شکوه درختان بسیار و آب روان نشستنگه مردم نوجوان یکی تخت به نهاد نزدیک آب بر او ریخته مشک و گلاب جوانی بکردار تاوند ماه نشسته بر آن تخت بر سایگاه رد برکشیده بسی پهلوان به رسم بزرگان كمربرمیان بیاراست مجلسی شاهوار به سان بهشتی به رنگ و نگاه دیدند مر پهلوان را به راه پذیره شدندش از آن سایگاه بگفتند که پحلب نامور دشاید از آن جای کردن گذرد تمام میزمانیم و مهمان ما فرودای ایدر به فرمان ما بدان تا همه دست شادی بریم به یاد رخ نامبر میخوریم تمتم به دیشان چنین گفت باز ای نامداران گردن فراس مرا رفت با ید بلموش پو به کاری که بسیار دارد چکو، سر تخت ایران عدی مرا باده خوردن نیاید به کار نشانی دهیدم سوی کیقوباد کسی از کس شما دارد او را به سر آن دلیران زبان بر گشان دارم نشانی من از کیقوباد گرایی فرود و خوری نان ما بیفروزی از روی خود جان ما بگوییم یک سر نشان قباد چورا چگونه است رسم و نهاد و چون رستم پی میبرد که این جوان دلاور از جا و مکان کیقوباد آگاه هست دعوت او را پذیرفته به شتاب به جمع آنان می بریم ده همتن زرخشندر آمد چو باد چو بشنید از پید نشان قبار یامد دمان طالب رود بار شن در زیدان ساابتام جوان از بر تخت خود برنشست گرفته یکی دست رستم به دست به دست دیگر جام پرباده کرد و زو یاد مردان آزاده کرد دگر بر دست رستم سپو بدو گفت ای نام مردار گفت بپرسیدی از من نشان قبار تو این نام را از که داری به بدو گفت رستم از بحلبان قیام آوریدم به روشن ربان سر تخت بیا بیاراستن بزرگان به شاهی برا خواستند پدرمان گزین یلان سرمسر که خوانند او را همزال زر مرا گفت رو تا به انبوز کوه قباد دلابر ببین با گروه به بر برو آفرین کن یکی نباید که سازی درنگندکی بگویش که گردان را خواستن به شادی جهان بیاناستن نشانر توانی و دانی مرا دهی و به شاهی رسانی راستم به میزوان جوان و دلاور خود پاسخ می دهد. من از سوی پدرم زال، پهلوان پهلوانان ایران برای کیقوباد پیامی دارم. آن پیام این که تاج و تخت ایران بدون پادشاه مانده، دشمنان ایران حجوم آوردن و بزرگان ایران کیقوباد را برای پادشاهی ایران برمزن. و اگر جای و نشان او را می‌دانی به من بازگو و او را به پادشاهی ایران برسان ز گفتار رستم دلیر جوان بخندید و گفتش ای پهلوان ز تخم فریدون منم چی قبارم؟ پدر بر پدر نام دارم به یاد تو عشقی رستم فرو برد سر به خدمت فرود آمد از تخت زم ای خسرو ای جهان پناه بزرگان و پشت مهان سر تخت ایدان به کام تو باد تن زند پیلان به دام تو باد نشست تو بر تخت شاهنشهی همت سرکشی باد و همفرهی درودی رسانم به شاه جهان ززاد گذین پهلوان، پهلبان همتن همانگه زبان برگوشاد پیام سفهدار ایران بداد سخن چون به گوش سفه رسید ز شادی در برش برکبید بیازید جامی لبالب نبید به یاد تمتن به دم درکشید تهمتن همیدون یکی جام می به کرد بر جان که برآمد خروش از دل زیر و بم فراوان شده شادی دور. او میزبان جوان خود کیقوباد، پادشاه آینده ایران است. رستم در برابرش سر فرود نیاورد و پادشاه به سلامتی او می انگاه آنگاه رستن به کیقوباد می‌گوید ما باید به شتاب از میان تورانیان گذر گذر کرده خود را به اردوگاه سپاه ایران برسون خرونخیز تا سوی ایران شد به یاری به نسل دلیران ایران شد آبادن در آمد چه آتش زجاف به بور نبردن درآورد آورد پای کمر برنیان باست رستم چوباد بیامد گرازان پس کیخوبا شب و روز از در نغنبی چنین تا به نزد طلاقی رسید حالون سردار طلاقی سپاهیان افراسیا که انتظار عبور دوباره رستم را میکشید به شتاب خود را به پادشاه جوان ایران و همراه جوانش رستم میرساند که قصد عبور از میان تورانیان را دارد آلون دلاور شداگه کار چه آتش بیامد سوی کارزان شهنشاه ایران چه زانگون دید برابر همی خواست صفت برکشید همتن به دو گفت ای شهریا! تو را جستن نباید به من و رخش کوپال و برگستوان همانا ندارند با من توان بگفت اینو و جای برکرد رخش به زخمی سواری همی کرد پخش قلون دید دیدی به جست زبند به دستندرون گرز و برزیم کمن بر او حمله آورد مانند باد بزد نیزه و بند جوشن بگفت همتنگ بزد دست و نیزه گرفت قلون از دلیریش مندشگه ستت نیزه از دست او نامدار بقرید چون تندر از کوسار بزد نیزه و برگرفتش ززین نها بن بون نیزه را بر زمین. خلون گشت چون مرد بر باب زن لشکر همه تن به تن هزیمت شد از بی سپاه خلون به یک بارگی بخت بد را هم تن بکشت از تلای سوار بیامد کتابان سیه کنسا کجا بود الافزار و آب روان برود آمدن آنجا یه پهلوان تا شب تیر آمد پراز همتن همیداد هر گونه ساز از آرایش جامعه پهلوی همان تاج آنیاره خستاوی چو شب تیره شد پحلو به تیرش با شاهی رنزنی رستم پس از تار و مار کردن سپاهیان توران و کشتن قلون در کنار چشمی آبی با پادشاه سر و شد آنگاه جامعه پادشاهی و خسروانی را که همراه دارد بر تن تیقوباد جوان روشانده شبانه او را به اردوگاه زال میرساند به نظریک زال آوریدش به شب و آمد شدن هیچ نقش لب. زال و بزرگان ایران به شاه جوان خوش آمد گفته یک هفته به شادمانی و سرور می گذارمه یک هفته با رایزن شدندند شدندندران مقبدان انجمن به هشتم بیاراستند بیا تخت آج بیاویختن دست بر آج تا به شاهی نشست از برش کیقوباد همان تاج گوهر به سر برنها همه نامداران شدند انجمن چو دستان و چون قارن راز زن چو خرداد و کشواد و برزین فشان گو فشاندند گوهر بران تاج نام قباد از بزرگان سخن بررسید زفراسیاب و سپه را بدید پادشاه دلیل و تازه از راه رسیده در نخست این روز پادشاهی خود پس از شنیدن گزارش جنگ و دیدار از سپاه ایران به سپاهیان و سرداران ایران دستور می جنگی یک پاکه و تمام کننده را علیه تورانیان آغاز اگر روز برداشت ز جای روشیدن آمد ز پرده سران به پوشی درستن سلیه نباد، چو پیلش شد که برخافت و رده برکشیدند ایرانیان به بستند را میان به یک دست محراب کابل خدا دگر دست گشد دهم جنگی بپاد به قلبندرون قارن راز زن ابا گرد کشباد لشگر شکن. از پشتشان زال با کیق و باد به یک دست آتش به یک دست باد به پیشندرون کاویانی درفش جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش چو کشتی شدار نیده روی زمین کجا موج خیزد ز دریای چین سپر در سپر ساخته گشت و راق درفچیدن تیغ ها چون که جهان سر به سر گشته دریای قار برفروخت شم از او صد هزار سه نالیدن بوق و بانگ سپاه تو گفتی که خورشید گم کرد را. ناخ پادشاه ایران با همه قدرت و همه سردارانش به دیدار دشمن نبرد فول آغاز یاغاست هارون فرمانده بزرگ سپاه ایران با همه وجود خیش شمشیر می‌زنند و چشم رستم جوان که در نخستین جنگ بزرگ زندگیش پای به میدان گذاشته از لاغاری های تارن خیره مانده است و هر حمله‌ای طارن سرپراست چنان چون باود مردم رد ساز یهی سوی چپ‌ها، یه سوی راست بران گونه از هر سوی کی نخاط چو رستن که طارن چه کرد چگونه باود ساز جنگ و نبرد به پیش پدر شد بپرسید از اوی با من جهان پهلوانا بگو چه افراس یابان بدن دیش مرد کجا جا گیرد به روز نبرد چه کجا بر فرازت درفش که پیداست تابان درفش بنفش من امروز بند کمرگاه بگیرم کشانش بیارم به رو ای پسر دار یک امروز با خیشتن حوش دار که ان در جنگ نرقشده هاست در ماهنج و در کینه حفر بلاست کش سیاه هست و قبطان سیاه از آهنگ سائل و از آهنگ پلا همه روی آهن گرفته به درفت سیاه بسته بر بر از اون را دن را نگهدار سخت که مردی دلیر است و پیروز بخت دو گفت رستم ای تحریبان تو از من مداری ترنج روان جهان آفرینانده یار من است دل و بازو حسار من است برنگی پس بخش روی نسان برامت خلوش بیدن جنگ دو سپاه در دشتهای گستردی بیرون از شهرهی به خونین پرنشه ادامه داد و این گستن جوان و دلیر است که میخواهد پرمانده سپاه دشمن افراسیاب را به چنگ آورده جنگ را پایان داد افراسیابیز برامت با دیدن این پهلوان بسیار جوان و بسیار نیرومند در دل حراسی که شدنات احساس کرده حاستار شناسایی او میشود. <تصفيق> فهر آسیابش به خامون بدید به من دندران خودک نارسید گردان بپرسید این اشتخواه بدین جون از بندشترها کدام است که را ندانم به نام به گفت بور دستان سام نبینی که با گرز سام آمده است جوان است و جویای نام آمده است به پیش سپاه آمده فراسیان چو تشتی که موجش برارد ز آب چو رستم برادی بفشار دران به گردن برآورد گرز گران چو تنگن در آورد باقی زمین روچرد گرز گران را بزین به بند کمرشان در آورد چنگ کردش از پشت زین پلن. همی خواست بردنش پیش قباد دهد روز جنگ نخستین دا ز سنگ سپه دار پنگ سبار نیامد دوان کمر خایدار گسست و به خاک اندر آمد سرش سواران گرفتن گردن درش سپه خود چو از چنگ به جست بخوایی دوستم همین پشت دست چرا نجفتمش همین بر کمر ساختم بند بکش دوستم این از گریختن افراسیاب با خود میگوید چرا به جای دوال و کمربند چرمینش کمرش را نگرفتم و با خود نیاوردم آری گا حوادث و ماجراهای کوچکی سرنوشت جنگ بزرگ و حتی ملنفت و جهانیان را دگرگون کرده است خبر دلاوری جرأت و جسارت رستم به کیقوباد پادشاه ایران میرسد پادشاه خورسند و مقرود از دلاوران ایران میخواهد کار را یکسره کنند شاوای زنگ آمد از پشت پیر خروشیدن کوس بر چند میل یکی مجده بردند نزدیک شاه رستم بدارید قلب سپاه. چون رستم بر شاه ترکان رسید درفچه عفت سپهدار شد ناپدید گرفتش کمربند و بفکند خار خروشی ز ترکان برآمد آمد بزار خود در قلب سپاهیانش با دشمنان ایران نیتند سپاه دشمن دست از پایداری برداشته راه گریز از ری به سوی دامقان و از آنجا به سوی جیهون را در پیش میگیرند 1160 گرد تورانی در جریان اقب نشینی کشته میشود بسیاری از تورانیان زخمی و اسیر شده با آنان شکست خورده شکب کنان از جیهون عبور کرده خاک ایران را ترک می کند افراسیاب شکست خورده به کاخ پدرش پشنگ بازگشته است. او که خود پدرش را به جنگ با ایرانیان برانگیخته بود اینک پدرش را پیمان شکن نامیده به او میگوید اشتباه تو این بود گمان کردی با کشت شدن ایرج ایران زمین توخی از مرد و پادشاه شده است یکی می رود و دیگری میآید و اینک کیقوباد آمده است ای نامبردار شاه ترابود از این کینه جستن گناه یکی آن که پیمان شکستن ز شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از پخم ایرج زمین پاک شد و زهر گزاگنده تریاک شد یکی کم شود دیگر آید به جهان را نمانند بی کت خدای قباد آمد و تاج بر سر نهاد کینه یکی نو در بشند افراسیاب افراسیاب خونریز که هنوز از به یاد آوردن چهری رستم به هنگام نبرد بزرگ بر خود نیلر برای پدر از دلاوری های رستم سخن میگوید و برای پشنگ شهر میدهد که چگونه نزدیک بود رستم کممربند او را گرفته کشان کشانش به اثارت نزد پادشاه ایران برد او به پدرش میگوید تو از قدرت و زور بازوی من آگاه هستی با این همه من در دست آن جوان دلاور ایرانی همچون پشه ناچیزی شده سواری پنید آمد از پشت سام که دستانش رستم لهاده اصنا بی به سان نهنگ دو تو گفتی زمین را بسوزد بدم همی تاختن در فراز و نشید همی زد به گرز و به تیغ و رکیب همه لشگر ما به هم برداری کسان در جهان آن شگفتی ندید این طرف بر یک کران به زین اندرف کند گران چونان برگرفتم ز زین پلنگ که گفتی ندارم به یک کشه سنگ کمربان تو بند قبار ز چنگش پتادم نگون زیر پا سواران چنگی همه هم گروه کشیدندم از چنگان لخت کون تو دانی که شاهی دلو چنگ من به چنگ اندرون زور آهنگ من دست به یکی پشم و آن آفرینش پراندیش اپرسیاب به پدرش پشنگ میگوید ما چاره جز درخواست آشتی از پادشاه ایران نداریم چرا که قدرت رودررویی با سپاه ایران نداریم و ناگزیر همون سرزمینی که فیدون ما را بخشیده بود بسنده کنید جز از جستن جستنش رای نیست که با او سپاه تو را پای نیست زمینی کجا آفیدون گرد بدان گه به طور دلاور سپرد به من داده بودند و بخشیده راست تو را کین پیشین نبایست خواست افراسیاب به پدر میگوید گوید یان, یان ما قناعم بسیار گرد پهلوانان بسیاری از ما کشته شد و من نیز بی خردانه اقریدس خردمند برادرم را کشتم و همه بدین خاطر بود که تو جنگ با ایرانیان را بازی گرفتی اینک از آنان آشتی بخواه و گرنه با توفان بیران کننده دیگری روبرو خواهیم شد و ترزین همه نام و, ننگ و شکست شکستی که هرگز نشاید بست دیگر آن کجا بخت برگشته شد که اقنیس پر کشته شد جوانی و دو تنگی روزگار و این روز بادی گرفتن شما کنون از گذشته مکنه هیچ یا سوی آشتی یاز با کیقوبا گرد دیگر آید یکی آرزوی به گردن آید صفه چه به یک دست رستم که تابند خور گه راست با او نتاوت بر بروی دیگر قارن رزم زن که چشمش ندیده است هرگز شکن سدیگر چه کشواد زرین کلاه که آمد به آمل به بردان صفار چون مهرب قابول خدای که سالار شاه است و زاول خدا فرمانروای تورانیان پس از شنیدن گزارش و پیشنهاد ناامیدانی پسرش افراسیاب در حالی که چشمانش را ااشق فرا گرفته است دبیر و نویسنده را خوانده برای پادشاه ایران تعیقات نامه نویسد تا فرستاده هوشمند و بینادل آن را به نزد پادشاه برند. سپخدار ترکان دیده پراب، شگفتی فروماند یاب، یکی مرد با هوش دل برگذید، فرستاد به ایران چنان چون سزید. سپهدار ترکان در نامی خود به که قباد می نویسد، اگر تور بد کرد و خونه ایره جاریخت، منوچه نیز نیست انتقام جویی کرده سر سلم و تور را از تن جدا کرد. پس جای پرخاش و شکب و شکایتی باقی نمی ماند. و شنگ در نامی خود میپذیرد که فریدون از روی داد و انصاف قلم روی پادشاهیش را بین پسرانش بخش کرده بود و به شاهی ایران کیقوباد آگاهی میدهد که تورانیان به همان قلم روی تقسیم شده در زمان فریدون یعنی سرزمین های بالای رود جیهون از هرگاه تا ماورا و نه رازی و خرسنده و بار دیگر جیهون رود مرزی ها با سرزمین ایران خواهد بود سرزمینی که فریدون فرمانروایش را به ایرج و بازماندگانش سپرده بود پشنگ نامی خود را به نام خدا و با درود به روان فریدون آغاز می کند. به نام خداوند خورشید و با که او داد بر آفرین در ازگاه وزو بر روان فریدون درود از او دارد این تخمه ما تارو گر از طور بر ایرج نیکبخت بد آمد پدید از پی تاج و تخت بران بر همی راند باید سخن نباید که پرخاش ماند ببن گر چین از ایرج آمد پدید منو اون سرتا سر این چین اینکین کشید. بران هم که کرد آفریدون کجا راستی را ببخشش بدید. تزدگرد کرد بداریم دل همبران رو نگردیم از و راه بسند سخرگاه تا ماور و نهر بر که جیهون میانجیست اندر گذر بر گوم ما بود انگار شام نکردیم بدین مرز ایراج بدون همان بخش ایراج از ایران زمین به دادا فیدونو کرد آفریم از آنگر بگردیم و جنگ آفریم جهان دل خیش تنگ آوریم با بعد زخم شمشیر و خشم خدای نیابیم وقت زهرد و سرام وگر همچنان چون فریدون گل به سلم و به تور و به ایدج سپرد ببخشیم و زان پس نجوی چین، که چندین بلا خود نیار سمیم چون نامه به محرنده را ورد فرستاد نزدیک ایران سپاه ببردند نامه برای کیقوباد سخن نیز از این گونه کردند یا فرستادی پشنگ نامی او را در اردوگاه سپاهیان ایران به پادشاه ایران کیقوباد میدهد پادشاه ایران پس از خواندن نامی پشنگ به فرستادی او میگوید همیشه این تورانیان بودند که در جنگ و خونریزی پیش دستی کردند دانی درست که از ما نبود پیش دستین نخست ز اندر آمد نخست ستم که شاهی چو ایگرد شد از تخت کم بدین روزه اندر در ها بیامد به ایران و بگذاشت آب چنیدی که با شاه نوزر در دا مدت شد پر از داخده زکینه به اقریرس پرخرت نانکرد که از مردمی درخورد زکردار بدگر پشیمان شدی به نبیز سرباز پیمان شدی مرا نیست از کینه و آز رنج بسی در سرای سپنج شما را سپردم از آن روی آب مگر یا بدارا بشم را زیاد. پادشاه ایران درخواست آشتی تورانیان را پذیرفته دستور می‌دهد تازه ای نوشته شود. رستم جوان که در خیمه پادشاهی حضور دارد به شاه ایران می‌گوید تورانیان به راستی خواستار صلح و آشتی نیستند این گرز من است که آنها را به گفتگوی صلح و آشتی ناگزیر ساخته پس نباید در خواستشان پذیرفته شود. بدو گفت رستم ای شهریان مجوی آشتی در گه کارزار نبود آشتی هیچ در بدین روز گرز من آوردشان برستم چون این گفت پسکه ای قبار چیزی ندیدم نکو داد نبی ری و پور پشنگ به سیری همی سر به پیچه از جنگ. سزد گرد هران که دارد خرد به کشی و ناراستی ننگرد. تیقوباد شاخ دریر بخشنده راستم پهلوان جوان خود میگوید در جهان هیچ چیز بهتر از داد و بخشش نیست دشمنان را باید بخشید به ویشان که این افراسیاب است پسر پشنگ و نبیره فریدون که از ما بخشش و آشتی میخواهد بنودی یکی باز پیمان نوشت به باغ بزرگی درختی اوج بزرگ ایران کیقوباد درخت نیخنامی در باغ تاریخ می و بدین گونه پیمان صلح و آشتی با تورانیان بس نمی شود جنگ بزرگ پایان می پذیرد خوباد نهمین پادشاه باستانی ایران و نخستین پادشاه کیانی فرمان میدهد سپاه ایران از میدان کارزار در دشتهای جنوب ری به سوی پارس به حرکت در آیند شهر استاخت در سرزمین پارس را پایتخت پادشاهی ایران انتخاب کرده است از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود ها را هارا کردید نشستنگه هنگاه استخد بود کیان را بدان جا راه فخت جهانی سوی وی نهادند رو که او بود سالار دیهی جود. به تخت کیان در آورد پای به داد و به آین و فرخنده را چون این گفت با نام بر ورمهتران ایتی مراست کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگی که از راستی که خشم خدای آورد کاستی پناسانی از درد و رنج تن است کجا خاک است گنج من است سپاهی و شهری مرا یکسر است همه پادشاهی مرا لشکر است همه در پناه جهانداری. رقمان بید و بیازار بید که دارد خورید و دهید سپاسیز خوردن به منبر هر هران کس کجا ز خط؟ نیابت همی توش از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هران کس که آید سفاه من است ل به همیه دلاوران و سرداران ایران پاداشها و هدایای شایسته میبخشد به ویژه زال دلاور بزرگ ایران را فراوان ستایش می کند و چون او به سالخوردگی رسیده خواستار آرامش و آسایش است پادشاه پسر جوان او پهلوان تازه رسیده ایران رستم را به جانشینی او برگزیده، تاج پادشاهی بخش بزرگی از ایران بزرگ از زابلستان تا دریای سند را بر سر قومی گذارد و بدین سان بار دیگر روزگار آزادی و آبادی و سربلندی ایران آغاز می شود قباد بزرگ نخستین پادشاه کیانی یکصد سال زندگی می کند و خداوند با او چهار پسر میدهد. دهد بر این گونه صد سال آسان بزیست نگر تا چون این در جهان شاه کیست پسر بود مرور آخردمند چهار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چه چو کاووس با آفرین که یارش دیگر بود بگارت گرکی پشین چهارم کجا اشکسش بود نام سپردند گیتی با آرام و کام پادشاهان را نیز با فرشته مرگ دیدار است چون کیقوباد هم سایه بالهای مرگ را بر فراز کاخ خیشتندید چون پادشاهان پیشین ایران پسر بزرگ خود پادشاه آینده ایران زمین کیقابوس را به کنار بستر مرگش فراخان و فراوان او را پند و اندرز داد چون سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تابندر آمد به برد چو دانس کامد به نزدیک مرگ بپشمرد خواهد همی سبز برگ سر ماه کاووس کیگاب بخواد زداد و دهش چند با او برام، به دو گفت ما برنهادی رخت تو بگذار تابوتو بردار تخت چه تختی چه تختی که بی آگهی بگسرم او ندارد ندارد خیره. چنانم که گویی زال برز کوه کنون آمدم شادمان بی گروه تو گرداد گر باشی و پاچ رای به آین بپایی به دیگر سران و گر آزید سرط را بهدان دان برایی یکی بگفتین و شد جهان فراخ گزین کرد صندوق بر جای کا این فردوسی بزرگ است که در سوگ کیقوباد چنین می سراید. جهان را چنین است سازونها برارت زخاک و به حدشان به بعد قباد میرود که کاووس نیاید که کاووس چه خواهد کرد آیا چون منوچهر پند پدر را پاس خواهد داشت و یا چون نوزر به فراموشی خواهد سپرد سفر جاودانه رفت قباد پیر و شاپور نستوب هم زال و قارن چه سرنوشتی در پیش خواهن یا رستم رستم دلی و افراسیاب افراسیاب و خیمن صفات بار دیگر در صحنه پیکار و جنگ دیدار خواهند داشت به یاری خداوند باز هم برایتان شاهنامه را روایت خواهند